بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد مام موحثي الحمد لله راتم جلوات موحثي بعلوم حديث آخرين بحث من بحث حديث من قتائب منقطع منقطع من موجعين اثنين الى تواليا ومعضل حيث ولا هل هم بحث منقطع در اين بيت امامت كريتي اومده هم بحث منقطع بحث منقطع يعني كه يك جز اسناد افتاده باشه سقط باشه يك راوي ذكر نشه دو تا راوي با هم ملاقات نکرده باشن ميشه حكم انقطاع را بحث اين روايت میگه منقطعن من دو وضعین 2 منقطع وقتی حاصل میشه که دو جا پشت سر هم نباشه یعنی در طی اسناد در طی اسناد چون اگر انقطاع و اسقاط و سقوط راوی مثلا دو نفر یا سه نفر از اول اسناد بشه چی میگن معلق اگر در ابتدای ترجیحات از جهت راوی روایت کننده مثلا بخاری باشه دو تا راوی پشت سر هم یا سه راوی باشه چه بیش بیگن؟ پس بحث امقطاع و بحث اعضال و معدل بودن کجاست؟ در ته اثنات وقتی که در ته اثنات در اثنای اثنات یک راوی سخت شده باشه منقطعه دو راوی بشتره هم؟ معدل خب اما بحث امروزمون بحث امروزمون بحث موقوف و بعد از اون میاد بحث مرفوع و بعد از اون مقتور ما قبل از این که بریم وارده بحث موقوف و مرفوع بشیم که شرف مرکور بالاتر از موقوفه لیکن نمیدونم چرا معلیم اول موقوفه بود بعد مرکور نمیدونم چرا لیکن ما به عنوان رتبه شرف هر کدوم از این حادید از بالاتر شروع میکنیم ما گفتیم حدیث به اعتبار انتهای اسناد اون به چهار دسته تقسیم میشه حدیث به اعتبار انتها یعنی آخرش به کجا ختم میشه یک حدیثی چیزی که برای واس با اسناد نقل میشه به اعتبار انتهای یا به پروردگار الله یقول الله تبارک و تعالی کذا یا انتهایش به رسول الله صلی الله علیه و آله میشه یا انتهاش به صحابی یا مادون صحابی اگر با الله خط بشه میشه چی؟ قدسی اگر به رسولات آزنا خط بشه مرفوع و اگر به صحابی خط بشه موقوف و اگر به مادون صحابی تابعی و تابعه مد... تابعی مقتور قدسی مرفوع موقوف و مقتور تعریفی که من خودم دارم хадиси ки ман худам дорам ва аз хадиси худ ки чинине ва самми биль-кутсий ма рава ан-наби ар-роб биҳи муصارрахан би-қоулиҳи ва самми биль-кутсий ва самми биль-кутсий ма рава ан-наби ва самми биль-кутсий ма рава ан بتبادي اوحى اوحى, إلي أوحى إلي أو يقول الله اوحى الي أو يقول الله اوحى الي أو يقول الله ونحوذ ونحوذ مما له عزاه ونحوذ مما له عزاه وسمى بالقصي مارا روى النبي رضي الله عنه مصرحا بقوله اوحي الي او يقول الله ونحوذ مما له عذائه راحت تتابع خط قصي حد حدیث که رسول الله صلی الله علیه و salam اثر ورده راش نقل بکنه به این صورت که بگه بر من بحث در پروردگار یا پروردگار چنین او يقول الله او قال الله با همه این طریقه ها وقتی که رسولت هم بگید فردگاه چیلین گفته میگوید میگوید همه اینها ها دلالت بر قدسی بودن حدیث رو دارد پس این بحث حدیث قدسی خب بعد میریم وارد بحث موقف بیشیم طبق اون چیزی که معلف کتاب امام ذهبی در کتابش رو برده شاید موقف قال ابن رحمه الله الموقوف هو ما نسب الى الصحابه بالقول او الفعل فصراحه تالي هالشيء كي هالشيء دي كي يا هالروايه ديت بالصحابي اذ قول يا فعل اش الصحابي نسبه ده بش على الفعل يا وهو ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول او خب ما قبل از اینکه بریم وارد بحث حدیث مرکه بشیم بحث خود موقوفات برث صحابه در ضمن مرفوع هم خواهد اومد بعد از موقوفات هست که شق مرکور رو داره چه موقع یک مووقف ها به مرفور را می گیرد نیاز بحث در دن مرکورتون سکمن مووق مرف ها دی که این به منطقه می کنم در بحث محض در بحث موقوف از گفته امام عراقی اینکه و سم بالموکوف ما قصرته بصاحب وصلت او قطعتو وصلت او قطعتو و سم بالموکوف ما قصرته بصاحب دیگه موکوف حدیثی کی یا اثری کی اختصار بشه به ذکر او قطعتته خلاص چه متصل باشه چه منطقه باشه حالا کاری نداریم که اصناد صحیحه یا ضعیف کاری نداریم اصناد صحیحه یا ضعیف بهش میگن چی؟ موقوف است مرضو کاری نداریم که این اصناد متصل یا متصل نیست یک مسئله مسئله دوم این که موقوف در اصطلاح این چینین مشهوره که باسم اثر ازش یاد میشه اثر تحذیب الاثار بالفقد الله حد چند که خودش لا تحذیب الاثر و امتحایی بازم احادیثم درش زک میکنه لیکن اصل دار اینه در لغت محدثی که اثر رو به موقوف اطلاق به موقوف به موقوف حدیث اچنکه ما گفتیم حدیث در اصلیم گفته سخن لیکن اصل اینه که حدیث گفته رسولات رو خیلیم باشه و اصل به که اثر گفته چی باشه؟ گفته اصحابی لیکن استفاده میشه یعنی گفته میشه در اثر از رسولات رو خیلیم چی نامده؟ یا در خبر معمولا خبرم همینطور خبر به گفته تابعیم گفته میشه خبری که الله از غیر اصحابه نصبه باشه لیکن به مرفوع به موقوف هم بازم خبر گفتی بیشه همچنین به ممتون فقط این اطلافات را سعی بکنید خصوصی ترش بکنید حدیث را مقیدش بکنید به حادیث رسول آتا بسید و موقوف را به آثار یعنی به اطلاف دید بهش اثر در اثر از فلانده حاوی چنین اومده و خبر را به تحقیقه این تا این که مشخص بشه که این شرح بس دیگه میگه خبر مستده شیه، بس دیگه میگه اثر مستده شیه، بس دیگه میگه حدیث مستده شیه سای بکنید این رو استفاده را استفاده بکنید خب میرم بحث بعدیم و بحث مرفوع امام عراسی چنین بگه در بحث مرفوع و سم مرفوعا مضافا للنبی و الخطیب و رفع صاحبی میگه که مرفوع آن چی که به رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نسبت داده میشه و امام خطیب بلزادی میگه و مهمه که این گفته رسول الله از طرف صحابی باشه این صحابی بگه که رسول الله صلی اللہ علیه میشینی فرمودن فکر کنم امام خطیب میخواد مرسر را از مرکوی جدا بکنه میخواد بگه که که اگر تابعی بگیر رسول الله چیز گفته میشه چی؟ میشه مرتلی که این قید این قید که صحابی بگیر که رسول الله گفته درست نیست چرا؟ ما گفتیم در مرفور منقطع بودن یا متصل بودن شرط نیست مهم نیست به ما این روایت موضوع باطل منکر یا هرچی که هست مهم اینی که انتحاش به کجا خد شده باشه یک شخصی بیا رسول الله گفته درسته؟ پس دیگه بحث نبیدنم که این که باید صحابی بگه که رسول الله گفته این بحثی شرطی زیاده و تعریف که این شرط قابل قبول نیست که هم میدید؟ تیگه فهو ممكن نتكلم عن اي حديث ناخذ حديث ما رؤيا مرفوعه رؤيا مرفانه يعني مرفانه بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم نعم چون خيل احتياط يكون وقت يبيرن حديث اسناده ضعيف ميگن رؤيا مرفوعه خيل العلماء ابو احتياط ميگن ان رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كذب اذا الرسول صلى الله عليه وسلم خب بحث مرفوعات خود کل انواع مرفوع حف نوره انواع مرفوع حف نوره میتونم در دون رو قلاصه بکنیم یک مرفوع لبزی که خشت خسمت میشه دومی هست مرفوع حفومی که خشت خسمت میشه مرفوع لبزی مرفوع لبزی بعد بادي یا ست قسمتش میکنن بعد یا چهار دوست که لفظا و قطعا به رسول نسبت داده شده چهار دوست یا بگیم ستا فرق اداره کنه یک قول رسول الله تعالیم قول رسول الله صلی اللہ علیه و تعالیم الاعمال به نیان و اینما ما امره چیه؟ قول یک مرکوع فعالی مرفوع فعلی رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا زیمك رسول الله چنی فعلی عن جاملتا درسته؟ او رأيت رسول الله, كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا چنین نماز بخوندان چنین نمزه بردوم يقرفتان چنین محسار مكادا اقبل بیده رحسی رفعل ر нимат мекард аз фардои сар ба консушӯш сар дод ба ҷодо миӯта я ва айту ё кана я фаъал ау кана кана набии соллаллоҳу алайҳи ва саллам яхтоби сурати қаф ва хатов мигиба хато хато ман хатобто сурати қаф یفعالو همه این الفاظ هست سبومی خیلی مهمه تقریب بعد یا نمیدونم قاط میزنن قاطی میکنن نمیدونن تشکیف بدن وقت تقریب صبح الله نمیدوندر شکل دردن مشکل دارن با تقریب این مسئله رو یعنی باید خوب تو زهن زهنتون بگنجونید و خوب درکش بکنید قبل از تاکریب. 40 میشم من بگم 40 مش وقت. رسول الله ریشاش که تا پرپوش پوش بود، آتش پوش می‌گیدیم که از پوش ثروتی که نماز می‌خون با میدید که رسول الله قرءام می‌کنه، چوریش تکون می‌خورد. بعد رسول الله بینی نمیدونم اینطوری بود، 40 نبود. سفید بود. نمیدونم نزد دراز بود نه کوتاه بود. اینا از تا رسول الله صلی الله علیه و آله. لیکالا تاکریب. کی خوردن اکه دوشت سسمار یکی که رسول الله صلی اللہ علیآن میمینن خالد ابن ولی چیکار می کنن؟ دوشت زبت همو سسمار یکالایی رسسمار قاسیه می خوردن و رسول شای گوستن من دوست ندارم از طعام اهل من نیست از خانواده از قلب کشی من این غزافهان اون دوست ندارم من هم دوشت ندارم بخورم دیگه می بگو همین مسائل مسائل حدیثی وقتی که انسان درست درکش بکنه خیلی از مشکلات راستش حل میشه مثل حدیثی که در تهی مسلم داریم همچین در بخاری حدیث عایش رضای الله عنہ که میگوید که دو تا جاریه دو تا دختر بودن که دفت میزنن تمام میزنن خب در اینجا ای دو دفت رفت دفت میزنن و از صلاح زدنم اونجا خوابیده خونه خودش خوابیده جوی نداره که به بخواب که مسلم که نمیتونه بره بخوابه. ابو بکر میگه ولادت نازل می میدونه که این دو تا دخترا دف میدن ابو بکر خودش اجازه میده رسول الله خوابیده بو برانها این کار بکنه. خب اگر من خطرنا وشو پس جدا نمیگاو که این کارو کنه حتما یه چیز مونکری هست یه چیز محدودی نیست یه چیز کار خوبی نیست دارن انجام میدن اون دخترا به خودش اجازه میده رسول الله اونجا خوابیده این کارو بلاده یه مسئله ای که هست ما از اینجا دست خودمون اینه که ابو بکر الله در اون دو تا دختر انکار میکنه در خانه رسول الله و انجمیر و شیطان دیو رسول الله صلی الله علیه و در خانه رسول الله صلی انکار یا انکار نیست انکار خب در اینجا ما میخوام یک حکم را استنباط بکنیم چطور میگیم این حدیث مرفوع از تقلید رسول الله میگیم حکم استنباط بکنیم چینی اینکه انجمیر و شیطان خب ابو حکم تحریم مزامار و سماع و آلات موسیقی رو کلا میده میگه مزمارو شیطونه اینا خب حالا حس یعنی ما گفتیم او بک اولا من چیزی تو داد اگر نبود فرازو مطلع فرازو مطلع فرازو که نمیگفت خب حالا گفت موقع فرشته‌ها تو سر جایه یا اینکه بگه او بک حرف اشتباهه است یا اینکه بگه حرف اشتباهه اصلا پذیرفته شده نیست من قبول ندارم مزمار نیست اصلا کردی که میگه مزماره اشتباه درست درسته؟ گفت رسول اشتباه؟ آیا درسته که رسول ساکت بشه و این حکر را به تخیر بندازه؟ درست هم نیست، بیان البیان وقت لا اللیگه، وقت حاجته، وقت نیازه یک حرفی زده، یا حرفش درست یا منکره اگر منکره با رسول الله ما حرف منکره، بکنه درسته؟ اگر ابو, ابو باید اشتباه میکنه رسول الله نباید روی اشتباه ساکت بشه الغا گفت مزمار شیکان در خانه رسول الله صدای شیکان در خانه رسول الله صلی الله رسول الله صلی ساکت میشه شه این قضیه حرفی نمیزنه یعنی چی ساکت شدن رسول الله بر این حرفی نمیزنه یعنی تایید و تقریر تایید و تقریر که این مزمار شیکان علی که دفع ما راهشون بگم که چی ان ها یو این دو شرط رو به ها دکتر دکترها راه ها بگو که امروز بوده ایده طب تقریر شد بعد از این تقریر و این مساله اینکه این صدای شیطونه که اول شیطون حرامه است صداده و استثناء شد دو چیز استثناء شد حالا بحث استثناء خیلی الان بحث اصولیش زیاده استثناء دو چیز میشه یکی این که حالا دو چیز بشه میشه دو چیز سه چیزه در اصل یک اولا تقریر دو تا س... دو تا تقریره. تقریر اول روی گفته رو بعد این موضوع را چه داد دوم روی دو تا آلت خاصیه سماع دو یک طرفش پوسته یک طرف دیگه بازه دیگه نبیدونم اون تبل اون فیلان اون مسائل روش تقریری حاصل نشده تقریری این نوع خاصیه بس این اوله بس دو تقریری در این حدیب حاصل شده دومن دومن رسول الله صلی اللہ علیه و ظلم استثنام میکنن روز عید این ها یومعید روزی عیده اونز شادیه بذار شاد باشن کی شاد باشه سه من؟ دختران میشه قیاس کرد بر دختران برای مردم اگر معروف بود اگر معروف بود مردا انجام میدادن در مردم راست را خودم مردم انجام ندادن و نمیدادن وادن همین این صحابی بزرگ افرادم نمسته دفع کنم روزی ایک از سابعه میبینه که نشسته دختران از خونه صدا گفت <تصفح> که تو صحابی رسولان نشستی اینجا و گوش میدیم گفت <تصفح> که این ها رخصه رخصت, رخصت که میاد یه چیز حرام باجه بر رخصت زیاده درسته؟ یا اینکه که رخصت از حلال میاد رخصت از حرام میاد ما باید مفهوم این لغت مفهوم این استراحات رو بدونیم تا بتونیم استنبال رو گنیم یک مثال دیگه نوابونید با من میخوام این رو بگم اثره فهم این مباحث در استنبات احکام. خودم از به تقریب. مسئله چه خود. مسئله شنیدن یا نشدیدن مردگان. مردگان میشنمه یا نمیشنمه؟ یک مشکل عقدی را میکنه همین بحث شنیدن موردگان خب. چه حدیثی هست؟ حدیث دنگ بد و قلید. وقتی که مشرکین را در قبل گلیدن رسول الله میگه سه بر سر عبو جهل و فلان و فلان میگه ای فلان جیجی چیست ای فلان و فلان اطماعشو میذاره درسته عمر رضی الله عنه آیات را از قرآن شدیده بر این اطلاع است که مردگان و با انت من انتا بگوست برای من فلقبور نمیتونی حرفت را به مردگان پیش پشتنگونی درسته و این نکلتو سمعال موتا نمی نمیتونی حرفت به سخنت را به مردگان بشنبالی درسته؟ سخنه قرآنه تا معنی قرآن میگه نمیتونی لیکن علم آنیگه اشکالی که بیش اومده رسول الله الان داره خساب قرار میده میگه ای فلان ای فلان اسمی بره یعنی اونها میشنبن رسول کار علاقی انجام نمیده خب عمر رضی اللہ عنه میکنه میگه ای رسول الله داری با اقوامی صحبت می کنیم که سخنت را نمی شنوند با بعد روایت اومده که خدا من در قرآن شید و گفت خب الان حرف عمر یا درست یا اشتباه همون که در بس رو بگفت اینجا هم یا اینکه که حرفش اشتباه هست بگه اشتباه نه مردگان می شنوند عمر گفت مردگان نمی شنوند اگر می شنوند رسوله بگه نه تو اشتباه کردیم مردگان می آیا رسول الله صلی اللہ علیه و گفتن كيشتمت لا فقلت يا عمر وما انت بمسمع منهم الان إن الان مشكله و حل بكون اي عمر لا. الان شنو بند ترخيصي بعضهم فداين ان الان حل بكون چون ان الان مشكله شريره راح حل بكون الان هي معجزه حل الان ای عمر این موقعی که الان قرار گرفتیم روش در این کفار و مجدکی الان ای عمر تو شنویده تر نیست بسید صلی اللہ حرف عمر را تأیید تقدیر کردن یا نکردن تأیید کردن که مردگان نمیشنوند لیکن الان استثناث الان استثناث آمواجده این ما باید تقریف نو باید اهمیتی مشکل عقلی مشکل فکری این کلنج ها نمییدم جا عنم و بحث موسیقی و فلان و فتحان و نمیدونم هی کش از این طرف و کش از اون طرح و نمیدونم تتلویزیون چهکار بکنی و نمیدونم با فیلم می کار چهکار بکنیم و بچه ها چهکار بکنیم بازار چطور بریم؟ همه این کلنج اقل میشه وقتی که فهم درست باشه وقتی که ماحت محدث رو درست بفهمید و حث مسلا حی ف اصول ف وقتی که آنم درست بفهمه مشكلة مش كده تشحل بشيء. بريباك تكفح بشيء دوارس. يقول بوئي بار أمات إثنانين رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. إن الله لا يعتزو هذا العلم وانتزاع انما ينتزوه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. فالظال ومراه كثيرة بدون علم بدون طلب اهل بدون اینکه تحصیله‌ای از علم شری داشته باشه بدون تمکن بدون اینکه تسلطی بر مباحث علم شری داشته باشه به خودش اجازه بده بیا حکم را صادر بکنه و حکمی بده خدا من علم را همینجوری به نظر بناست همین حدیث که با خب علما اگر علما نمونند حالا که میتونه فهم درست داشته باشه مردم چیکار میکنن گمراه ها را تقاق میکنن هم خودشون گمراه میکنن هم مردم این مشكله جامعه اسلامیه مرفوع نوره دوبار مرفوع چیه؟ مرفوع فکمی فکمی خودش بازم مرای میتونیم به 3 دسته میتونیم به 4 دستارم درستی کنیم نور اول مرفوع قولی فکمی مرفوع قولی فکمی برای خودش شرق شروع داره برای خودش مرفوع فکمی قولی شرق شروط داره یک اون صحابیی که این حرف را میزنه از بنی اسرائیل از یهود و اهل کتاب و نصر نقل نداشته باشه نقل نکنه از مثل عبدالله بن عبان جز مشهورین مثل عبدالله بن عمر بن عام جز کسانی نباشه که از اهل کتاب نقل نکنه دومه اون مسئله مسئلهی که داره نقل نکنه جز مسائل اجتحادی یا رأی نباشه رأی یک نظری یک اجتهادی از خودشون نباشه. فکر بکنم که چینی نیا فکر بکنم که چنانه. یا اجتهادی کن در یک مسئله فکر. سبومن شرح یک غریب و یک کلمه مشکلی و یا حدیث نباشه. شرح یک حدیثی نباشه. شرخ نباشه. شرخ حدیث نباشه. من اون حرفی که داره میزنه یا حرفی از پیشین باشه. خدا من که آدم را خلقه از کرد چینین خلقه از کرد یا آدم و یا ایسا و یا پیامبر فلانی چینین کرد یا حرفی از آینده بزنه چینین روح میدهد نشان های خیامه ها از فلان بسه احالیت حوضه یه فکر دارید یا بحث عقاب و ثواب این چینین کاری کردی سردنش میشه این چینین کاری کردی ثواب داری که مسالش زیاده که از صحابه هده اینکه میگفتن مثلا فلان کار ثواب داره یا فلان کار گناه داره مثل حدیث ابو هریره رضی الله عنه که کسی که از آن روشن در مسجد و بعد به خدمت خارج بشه فقط عفو اول قص خب یک حکمی داره اطلاق میکنه بر کسی که چی برکتی که از متن خارج بشه بعد از اعراب به اعراب درسته طرز نشون گویشه پس یک مرفوع میشه چی؟ یک مرفوع شکمیه قولی مرفوع اقلی قولی دو مرفوع فعلیه نکلی مرفوع فعلیه نکلی علی رضی الله عنگ که در نماز خصوف ستا روکو انجام دادن نماز خصوف ستا روکو انجام دادن حتی که ما مرفور رو بیستر دیست داریم و مرفور رو هیچ وقت کتاه نمیم از ستا روکو خوندن در خرده که عاد. لیکن الله حکم سعل علیه حکم چی داره حکم مرفور ست نکنم که علی حتی که مثل اشتحادی شد شاید, شاید یک لمس بشه ولی تو که نکنم اجتهاد دیگه به این حجرت که بخواد یک روکرو را در یک عبودت اضافه بکنه و ثابت از علی رضی اللہ عنه و همچنین ابن عباس که نماز آیات وقت که زلزلت شد در زمان خلافت علی رضی اللہ عنه بعد از زلزلت نماز آیات را خونده یا نماز همین نازلت با سر روکور خب مرکوع تقدیر یا مخصوص تقدیلی یا حکمی صفحابی خبر بده که مثلا به فرد ما در زمن رسول الله صلی اللہ علیه و سلم چین کار را انجام می دانیم چین کار انجام می دانیم کنن نعزل والله خیلنده ما در که وحی نازم می شود مثلا عزم می کردیم عزم اینکه اون کنیس ها خامله نشن عزم می کردن که اون کنیس خامله نشن نطفه خلیسون ویقه حیمون کنیزها نمیریفتن به خاطر اینکه حابل نشه اگر کارشون اشتباه بود، عملش اشتباه بود برای بادار نشدنه اون کنیزها مثلا میگه فاردون اشتباه حسین وقت نازل میشه به صحابه انجام میدادند. یک واقعه اداره صورت میگیره. هرچند که رسول نمیبینه اون وقت مثلا وقتی میخواست کار انجام بده حسین نزدیکی با, با اون کنیزش یا همسرش، اصلا که در جایی که بخفاط، لیکن وقت یا خدا من خداوند یک وقت پنهان باقی نمیمونه خداوند ساکت نمیشه از یک وقت اگر مصلحتی درش بود اگر اگر من دار یا مضروب بود یا بالاخره چیزی بود فقط ساده است حالا زیاد مسائلش. چارومی صلو بعد لا چرم اضافه میکنه که خود همین چارومی میشه. مثال ها زیاد داره مثلا سحابی بگه عمر نابه کده یا نوهی نعن کده ما چه بچنیم فعلی امسلین یا نه شدیم نگه الان بگه که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا نهان رسول الله اشنان که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیگه اون نهیش سریحه لیکن بگه عمر نه ما امسلین ما دستود داشتیم یا نه شدیم بازم جز مرکوع قرار میگیره هم همچنینین سحافزی که من ون نتی کلم منون نتی کلم حالا ثال ها زیاده که من بخوام بحث و باز بکنم خیلی باز مییم مسئال هایی که میاد روش و اون دلال هایی که هست جوی خودش رو داره به همین جا اتفاق می کنیم به همین مقدار فقط یه چیزی که هست من بهش اشاره بکنم اما اونم این که صحابه تا وقتی که شرح غریب نباشه طبقه هم مشروعی که ما گفتیم تا وقتی که شرح یک قریبی یک لفظ مشکلی نباشه در خود قرآن حکم مرفوع رو به شکم مرفوع، حتی که در خود همون غریب گفته خود صحابی خرجت هست چون قرآن گفتیم بر زبان آنها نازل شده و وحه بر زبان آنها نازل شده اونها آگاه تر از ما هستن به لغت قرآن لیکن شکم مرفوع را به خودش نبید شرط همون و شرط همون لغت ها این فقط مثله که در خاکم بحث مرفوع باید میگفتیم و گفتیم خب بحث متصل رو میدونیم برای Асиёянде хаста